زهار چرا میگن؟ با پا نمیگن اگر کسی به منطوعه خودش بزن خودش او رو داد به عضوی از آزای محرمات مانند مادر دختر امی خاله و خواهر، به عضوی از آزای محرمات که نگاه کردن آن عض برای شما حرام باشد به اون اگر تشویداد داد باید میشود زهار که فارد دماغ دارد چجوری؟ اگر کسی بخواهن تو برای من ما مانند مادر مادرم هستی تو برای من ما مانند دیگرسران شرمگاه مادر هستی نگاه کردن شرمگاه برای پسر جایز نیست نگاه کردن کمر مادر برای پسر جایز نیست نگاه کردن شرمگاه خال ام برای آقا جایز نیست اگر زن خود را به این آزار تشویده زهار می‌سید دست تو دس مادرم هستی تو اینکه پای مادرم هستی گفتلم میشه